صار الله دوست دارم والله قسم به صار الله دوست دارم لا سیدنا و مولانا علی ولی الله سیدنا و مولانا علی ولی الله ای بانگ موج دریا ای قره دلیران ای در کمند مشت قوقای همه شیران وغای هم شیران تنها تر از همیشه بر تارک محشر نمود تیقت ای هی بتات قیامت ای هی هی قیامت خوشید دشمن از هم از گام او سوارت میلر ز دسمان از وهو یزول فقرات، وهو یزول فقرات، علی علی حق علی مدار، علی علی حق علی مدار، خونم، <مع> علی علی حق علی مدار، خوب کف زن قشنگاشو بخونم خونامو، <Letterman> علی حق علی مدار. <tycznie> داد از او رد فاط مییت از برق هی دریات پیچید در دو عالم دست دلاوریات دست دلاوریات میدال تخیل بس بر نام حق هنگام رزمت اوید الله اکبر حق الله اکبر حق در اوج مرد و مردی کس نیست در کنارت در عوج مرد و مردین کس نیست در کنارت می لرزد آسمان از روحوی زلفقارت روحوی زلفقارت علی علی حق علی مدر ماشاءالله حق علی مدر بگو جانم چشمت قیامت افروز دیوانه کرده ما را چشمت قیامت افروز دیوان چلد ما را می میسراید اوای لافتا را اوای لا را عباس قد کشیده در زیر دست های در دل می برد ابلفض با ضرب شست در با ضرب شست حیدر با هر تپش براحت زخرست بیقرارت با هر تپش براحت زخرست بیقرد میلر زد وسه مال از بوی زل فارت بوهوی زل علی علی حق علی مدن هیئت بیت و سلام الله عليها. btzsir t z s i -r.